کتاب آه بازخانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام حسین گفت این زمین چه نام دارد؟ گفتند اقر حسین گفت خدایا به تو پناه برم از عقر باز نام آن زمین پرسید گفتند کربلا آن را نینوا هم گویند که دهیست به اینجا حسین را اشک در چشم بگردید گفت بلا جای اندوه و رنج است ام سلمه مرا خبر داد که جبرئیل نزد رسول خدا آمد و تو با من بودی بگریستی رسول خدا فرمود پسر مرا رها کن من تو را رها کردم پیغمبر تو را بگرفت و در دامن نشانی جبرئیل گفت آیا او را دوست می‌داری؟ گفت آری گفت امت تو او را میکشند و اگر خواهی خاک آن زمین را که به دانجا کشته شود به تو بنمایم فرمود آری پس جبرئیل بال را بالای زمین کربلا بگشود و آن زمین را به پیغمبر نمود حسین آن خاک را ببوید و گفت والله این همان خاک است. که جبرئیل رسول خدا را به آن خبر داد و من در همین زمین کشته می شدم. گفت فرود آیید بارهای ما اینجا بر زمین گذاشته شود و خون ما اینجا بریزد و قبور ما اینجا باشد جد من رسول خدا با من چنین حدیث کرد پس همه فرود آمدند و بارها را بر زمین نهادند و هر خود و همراهانش مقابل حسین فرود آمدند با هزار سوار. آنگاه نامه به عبید فرستاد که حسین در کربلا بار بک و رحل بیفکند. حسین برخاست در میان همراهان خود خود بخون. خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و نام جد خیش برد و بر او درود فرستاد گفت کاری پیش آمد که میبینید و آن روز روز پنج شنبه دوم محرم الحرام سال شست و بود حسین دوات و کاغذ خواست و به اشراف کوفه نوشت به آنها که میدانست بر رأی او استوار ماندند بسم الله الرحمن الرحیم از حسین ابن علی سوی سلیمان ابن سرد و مسیب ابن نجبه و رفاعت ابن شداد و عبدالله ابن وال و گروه مؤمنین اما بعد شما دانید که پیغامبر فرمود هر کس ببیند سلطان جائری را که محرمات الهی را حلال شمارد و اهد خدای را بشکند و مخالفت سنت رسول خدا کند و رفتار وی با بندگان خدا با ستم و گناه باشد و این او نکند به گفتار و کردار بر خداست که آن ظالم را به هر جا می برد او را هم بدان جای برد و این گروه بنی امیه فرمان شیطان را پیروی کرده اند و اطاعت خدای را بگذاشده و فساد نمودند. حدود خدا را معطل گذاشتند. بیت المال را منحصر به خود ساختند. حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام کردند. و من سزاوارترین مردمم به نهی کردن و بازداشتن آنها و شما نامه ها به من نوشتید و فرستادگان شما نزد من آمدند و گفتند که با من بیعت کرده اید و مرا تسلیم نمی کنید و تنها نمی گذارید اکنون اگر بر بیعت و پیمان خود پایدارید به راه سوا که من حسینم پسر علی و فاطمه دختر رسول خدا من خود با شمایم و یکی از شما و خاندان من با خاندان های شماست و من سرمشق و پیشوای شما در زندگانی ما بیت المال را به خود اختصاص نمیدهیم و صرف خاندان خود نمی کنیم مانند یکی از شما زندگی می کنیم تا شما به ما تأسیی کنید در ترک اسراف و تجمل و اگر چنین نکنید و بر عهد خود استوار نباشید و بیعت از خود بردارید به جانم سوگند که از شما عجیب نیست با پدر و برادر و پسر مسلم همین کردید هر کس فری به شما خورد نازمود است. شما از بخت خود روی شدید و بهره خدا را از دست داده اید. هر کس پیمان شکند؟ زیانش هم بر خود اوست و خداوند به زودی مرا از شما بینیاز گرداند و این همان سخنانی بود که برای سپاهیان هر ایراد کرده بود آنگاه نامه را پیچید و مهر کرد مردی از شیعیان حسین برجست او را نافع ابن هلال جملی می گفتن. گفت یبن رسول الله تو میدانی که جد تو رسول خدا نتوانست محبت خود را در دلهای همه جای دهد و چنان که میخواست همه از بن گوش فرمان او برند. باز در میان آنان منافق بود که نوید یاری میدادند و در دل نیت بیوفایی داشتند. در پیش روی او از انگبین شیرینتر بودند و پشت سر از هنزل تلختر. تا خدای عزوجل او را به جوار رحمت خود برد و پدرت علی همچنین بود. گروهی بر یاری او متفق شدند و با ناکسین پیمان شکن و قاستین جفاکار و مارقین کجرفتار کارزار کردند. تا مدت او به سر آمد و سوی رحمت و خشنودی پروردگار شتافت و تو امروز در میان ما بر همان حالی. هر کس پیمان بشکست و بیعت از گردن خود برداشت خود زیان کرده است و خدا تو را از او بی‌نیاز گرداند پس با ما به هر سوی که خواهی بی‌پروا روانه شو که راه راست همان است که تو روی خواه سوی مشرق خواه سوی مغرب به خدا سوگند ما از قضای الهی نمی‌ترسیم و لقای پروردگار را ناخوش نداریم و از روی نیت و بصیرت دوست داریم هر که را با تو دوستی ورزد و دشمن داریم هر را با تو دشمنی کند آنگاه بریر برخواست گفت والله یبن رسول الله خداوند به وجود تو بر ما منت نهاد که پیش روی تو جنگ کنیم و در راه تو اندام های ما پاره پاره شود و جد تو شفیع ما باشد روز قیامت رستگار مباد آن گروهی که پسر پیغمبر خود را فرو گذاشتند وای برانها از آن چه بدان رسند فردا و در آتش دوزخ بانگ ویل و وای برآورد. حسین روی به اصحاب کرد و گفت مردم بندگان دنیایند و دین لیسیدنیست است روی زبان ایشان نهاده تا مزه از آن می نگاهش دارند و وقتی بنای آزمایش شود دینداران اندک باشند حسین فرزندان و برادران و خیشان را گرد کرد و بدان ها نگریست ساعتی بگریست آنگاه گفت خدایا ما عترت پیغمبر تو محمدی ما را بیرون کردند و براندند از حرم جدمان آواره ساختند و بنی امیه بر ما جور کردند خدا حق ما بستان و ما را بر قمم ستمکار فیروزیده ابن زیاد نامه سوی حسین فرستاد به این مضمون به من خبر رسید که در کربلا فرود آمدی و امیرالمؤمنین یزید به من نوشته است که سر بر بالش ننهم و نان سیر نخورم تا تو را به خداوند لطیف و خبیر برسانم یا به حکم من و حکم یزید ابن معاویه بازایی و السلام چون نامه او به حسین رسید آن را بخوند از دست بینداخت گفت رستگار نشوند آن قوم که خوشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدن فرستاده گفت ای ابو عبدالله جواب نامه گفت این نامه را نزد من جواب نیست، او مستحق به کلمه عذاب است، حسین سوی کسی نامه نویسد که امید به هدایت و ارشادش بود، چون فرستاده سوی ابن زیاد بازگشت و خبر بگفت سخت براشفت اوید الله ابن زیاد عمر سعد عبی وقاس را با چهار هزار سوار به دشت پی مأمور کرده بود، که دیلمان بر آنجا دست یافته و تصرف کرده بودند. و فرمان ولایت ری هم به دو داده بود و در منطقه حمام اعین اردو زده بود چون کار حسین به دینجا رسید ابیدالله عمر سعد را بخواند و گفت سوی حسین روانه شو چون از این کار فرا حاصل شد سوی کار خود رو عمر استعفا کرد ابن زیاد گفت آری به شرط آنکه فرمان ما را باز دهی چون عبیدالله این بگفت عمر سعد پاسخ داد امروز مرا مهلت تا بنگرم پس با نیشخواهان مشورت کرد، همه نه کردند و همزت ابن مغیرت ابن شعب خوهرزادش نزد او آمد و گفت را به خدا قسم ای خال که سوی حسین نروی که هم گناهکار شوی و هم قطع رحم کرده باشی قسم به خدا اگر از دنیا و از مال خود و از ملک روی زمین بلفرض که تو را باشد دست برداری و چشم بپوشی بهتر از آن است که به لقای خدای عزوجل رسی و خون او در گردن تو باشد گفت چنین کنم و شب را همه در اندیشه این کار بود پس نزد ابن زیاد آمد و گفت تو این عمل به من سپردی و همه شنیدند و من در دهان مردم افتادم. اگر رأی تو باشد مرا به همان عمل فرست و دیگری از اشراف کوفه سوی حسین گسیلدار دار. کسانی که من آزمودتر از آنان نیستم در جنگ و چند کس را نام برد. ابن زیاد گفت: «کسی که خواهم بفرستم. درباره او با تو مشورت نمی کنم و از تو رأی نمی خواهم. اگر با این لشگر ما سوی کربلا می روی؟ فهوه و اگر نفرمان ما را بازده عمر گفت میروم چون فرده شد عمر ابن سعد با چهار هزار سوار بیامد تا بر حسین فرود آن و آن روز سیوم محرم عمر سعد عروت ابن قیس احمسی را سوی حسین فرستاد و گفت نزد او رو بپرس برای چه اینجا آمدی و چه خواهی؟ و اروه از آن کسان بود که نامه نوشته بود. شرم داشت از رفتن. پس ابن سعد از دیگر رؤسای لشکر همین خواست. آنها نیز نامه نوشته بودند و همه تن زدند و کراحت نمودند. کسیر ابن عبدالله شعبی برخاست و او سواری دلیر بود که از هیچ امر خطیر رویگردان نبود. گفت من می روهم. و اگر خواهی او را به ناگاه بکشم عمر گفت کشتن او را نمیخواهم خواهم ولی که نزد او را و بپرس برای چه آمده است کسیر برفت چون ابو ساعدی او را نگریست گفت یا ابا عبدالله اصلحک الله بدترین مردم زمین و بیباکتر در خونریزی و قتل بیامد به خود برخواست و پیش او باز رفت و گفت شمشیر خود را بگذار گفت نمی گذارم که من فرستادهی بیش نیستم اگر از من می پیغام بگذارم اگر نخواهید بازگردم. گردم ابو سمامه گفت من دست خود بر دسته شمشیر تو گذارم و تو هرچه خواهی بگوی گفت نه قسم به خدا که دست تو به آن نرسد گفت پس هرچه خواهی با من بگوی و من پیغام تو را به حسین برسانم تو را نمیگذارم نزدیک او شوی چون تو نابکار مردی و یکدیگر را دشنام دادند کسیر نزد عمر سعد بازگشت و خبر بگفت عمر قررت ابن قیس هنزلی را بخواست و گفت وی حک ای قرره حسین را دیدار کن و بگوی برای چه آمده است و چه خواهد قرره بی آمد. چون حسین او را بدید گفت این مرد را میشناسید حبیب ابن مظاهر گفت آری مردی از هنزلت ابن تمیم است خاهرزاده ما و او را نیکوایی می و نمیپنداشتیم در این مشهد حاضر گردد بیامد و بر حسین سلام کرد و پیغام بگذارد حسین گفت مردم شهر شما برای من نامه نوشتند و مرا خواستند بیایم اکنون اگر مرا را دارید باز می گردم. حبیب ابن مظاهر گفت ای قرره وای بر تو کجا میروی؟ سوی این قوم ستمکار؟ این مرد را یاری کن که خداوند به پدران وی تو را کرامت داد. قرره گفت بازگردم گردم و جواب پیغام او برسانم تا ببینم چه شود؟ و نزد امر رفت و خبر بگفت. امر گفت امیدوارم که خدا مرا از جنگ و کارزار با او نگاه دارد امرسوی عبیدالله ابن زیاد نوشت بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد من چون نزد حسین فرود آمدم رسولی فرستادم و پرسیدم برای چه آمد و چه میخواهد؟ گفت مردم این بلاد به من نامه نوشتند و رسولان فرستادند که من نزد آنها آیم آمدم و اگر اکنون آمدن مرا ها خوش دارند و از آنچه رسولان از ایشان پیغام آوردند، پشیمان شدند، من باز می گردم. حسان ابن گفت، نزد عبیدالله بودم که این نام آمد. گفت، اکنون که چنگال ما به در آویخت امید رهایی دارد، راه گریز نیست. عبیدالله نامه سوی عمر سعد نوشت. اما بعد نامه تو به من رسید و آنچه در آن نوشتی دانستم. پیشنهاد کن او و همراهان وی را که با یزید بیعت کنند. اگر کردند رأی خیش ببینم. و سلام. چون جواب به عمر سعد رسید گفت من خود اندیشیده بودم که عبید الله جوی نیست. اکنون گمان من درست آمد. ابن سعد آن پیغام را پیشنهاد نکرد چون می دانست حسین هرگز بیعت نکند. ابن زیاد به گردآوردن مردم فرمود در جامعه کوفه و خود بیرون آمد و به منبر رفت و گفت ای مردم شما آل عبی سوفیان را آزمودید و دانسته که آنها چنانند که شما میخواهید این امیرالمؤمنین یزید است میشناسیدش شناسیدش نیکو سیرت و ستود کردار با رعیت محسن عطا را در جای خود نهد راهها در عهد او امر شده معاویه در عهد خودش بندگان خدا را مینواخت و به مال دنیا بینیاز میگردانید و یزید هم پس از او صد درصد بر جیره و حقوق شما افزوده است و مرا فرموده که باز بیشتر گردانم و از شما خواهد به جنگ دشمن او حسین بیرون روید پس بشنوید و فرمان برید و از منبر فرود آمد و مردم را عطای فراوان داد و امر کرد به جنگ با حسین و یاری ابن سعد مردم کوفه جنگ حسین را مکروه می‌داشتند هر کس را به جنگ روان می‌نمود باز می‌گشت عبیدالله سعد ابن عبد الرحمن را گفت تا تفحص کند و از متخلفان هر کس بیند نزد او برد سعد یک نفر شامی را که به کار مهمی از لشگرگاه به کوفه آمده بود گرفته نزد عبید الله برد گفت تا او را گردن زدن دیگر کسی را جرأت تخلف نماند و گفتن کار مهم آن مرد شامی طلب میراث بود شش شب گذشته از محرم بیست هزار سوار فراهم شدن ابن زیاد سوی شبست ابن ربعی فرستاد که نزد ما آی تا تو را به جنگ حسین فرستین شبست خیش را به بیماری زد شاید ابن زیاد دست از وی بدارد ابن زیاد نامه سوی او فرستاد اما بعد فرستاده من خبر آورد که تو خود را رنجور نموده ای. و میترسم از آن کسان باشی که خداوند در قرآن فرماید اذالق الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلو الى شياطينهم قالو اننا معكم انما نحن مستهزئون چون به مؤمنان میرسن میگویند ما با شما ایم و چون با دار و دسته شیطان صفت خودشان خلوت میکنند میگویند مؤمنان را دست انداخته ایم و ما با شما اگر در فرمانمایی به شتاب نزد ما آی پس شبست بعد از نماز عشا بیامد که ابن زیاد روی او را نبیند که نشانه بیماری در آن نبود چون در آمد مرحبا گفت و در نزدیک خودش نشانید و گفت میخواهم به قتال این مرد بیرون روی و یاری ابن سعد کنی گفت چنین کنم و ابن زیاد پیوسته لشکر میفرستاد نزد عمر شبس ابن ربی را با هزارتن، کعب ابن تله را با سه هزارتن یزید ابن کاب کلبی را با دو هزارتن، هسین ابن نومی را با چهار هزارتن مزاقر ابن رهینه مازنی را با سه هزارتن، نسر ابن عرش را با دو هزارتن حجار ابن عبجر را با هزارتن، شمر ابن زلجوشن را با چهار هزار شامی و جز اینها هزار تن از قادسی باهر آمده بودند و چهار هزار تن از کوفه با عمر ابن سعد و همه یاوران حسین هشتاد و تن بودند سی و دو سوار و باگی پیاده و سلاح جنگ جز شمشیر و نیزه نداشتند ابن زیاد به عمر نوشت من چیزی فروگذار نکردم و برای تو بسیار سوارب و پیاده فرستادم پس بنگر که هر بام داد و شام خبر تو به من میرسد و ابن زیاد از ششم محرم ابن سعد را به جنگ برمیانگیخت. ابن زیاد سوی عمر ابن سعد نوشت حسین و اصحاب او را مانع شو از آب چشند چنان که با عثمان ابن آن پرهیز کار گزیده همین کردند. پس عمر ابن سد در همون وقت عمر ابن حجاج را با 500 سوار به شریعه فرستاد و میان حسین و اصحابش و میان آب فراد حائل شدند و نگذاشتند قطره آب بردارند. و این سه روز پیش از قتل حسین. عبیدالله بن حسین ازدی که وی را در قبیله بجیله میشمردند بانگی بلند بر و گفت ای حسین این آب را نبینی هم رنگ آسمان والله از آن قطره نچشی تا از تشنگی درگذری حسین گفت خدایا او را از تشنگی بکش و هرگز او را نیامرس.» حمید ابن مسلم گفت به خدا سوگند که پس از این به دیدار او رفتم و بیمار بود. سوگند به آن خدایی که معبودی غیر او نیست دیدم آب میاش آمد تا شکمش بالا می آمد و آن را غی کرد. و باز فریاد می زد العتش العتش باز آب می خورد تا شکمش آماس می کرد و سیراب نمی شد. کار او همین بود تا جان داد حبیب ابن مظاهر با حسین گفت: یا ابن رسول الله، در این نزدیکی طایفه ای از بنی اسد منزل دارند اگر رخصت فرمایی نزد آنها روم و ایشان را سوی تو خانم شاید خداوند شر این جماعت را از تو به سبب ایشان دفع کند. حسین اجازت داد. پس حبیب ناشناس در دل شب بیرون شد تا نزد ایشان فرود آمد دانستند وی از بنی اسد است و از حاجت او پرسیدند گفت بهترین ارمغان و تحفه که مهمانی برای قومی آورد برای شما آورده ام آمدم تا شما را به یاری پسر دختر پیغمبر خانه او در میان جماعتی است. هر یک تن آنها به هزار مرد، هرگز او را تنها نگذارند و تسلیم نکنند، و عمر صد گرد او را فرو گرفته است، و شما قوم و عشیرت منید، شما را به این خیر دلالت کنم، امروز فرمان من برید و او را یاری کنید تا شرف دنیا و آخرت اندوزید من به خدای سوگند یاد میکنم که یکی از شما در راه خدا با پسر دختر پیغمبر او کشته نشود مگر رفیق محمد باشد در علیین پس مردی از بنی اسد که او را عبد ابن بشیر میگفتند گفت من اول کس باشم که این دعوت را اجابت کنم و رجز خواندن گرفت آنگاه مردان قبیله برجستند تا نود مرد فراهم شد و به آهنگ یاری حسین بیرون آمدن مردی همان دم نزد عمر سعد شد و او را بیاگاهانید ابن سعد مردی از همراهان خیش را که ارزق میگفتند با چهارصد سوار سوی آن تایفه فرستاد که به آهنگ لشگرگاه حسین بیرون رفته بودند در دل شب سواران ابن سعد در کنار فرات جلوی آنها بگرفتند و میان آنها و حسین اندک مسافت مانده بود. پس با هم در و کارزاری سخت شد. حبیب بر ارزق بانگ زد که وای بر تو با ما چه کارت؟ بگذار دیگری غیر تو بدبخت گردد. ارزق ابا کرد و باز نگردید و بنی اسد دانستند تا به مقاومت با آن گروه ندارند. منهزم شدند و سوی قبیله خیش بازگشتند و آن قبیله همان شب از جای خود کوچ کردند مبادا ابن سعد شبانه بر سر آنها آید حبیب ابن مظاهر سوی حسین بازگشت و خبر بگفت حسین گفت لا هول ولا قوت الا بالله